اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه الا أن قالوا الا أن قالوا اخرجووا آل لوط من قریتكم إنهم أناس یتطهرون پس جواب قومش جز این نبود که به یکدیگر گفتند خاندان لوت را از قریهٔ خود بیرون کنید. که اینها مردمانی پاک دامن و پاکیز جو هستند فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اِلَّا مْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ آنگاه او و خانواده اش را نجات دادیم مگر همسرش که مقدر کردیم او از بازماندگان در آن شهر باشد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ و بارانی از سنگ بر سر آنها باراندین پس باران بیم داده شدگان چه بده است قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ <تصفيق> ای پیامبر بگو حمد و سپاس مخصوص خداوند است و سلام بر بندگانش کسانی که او آنها را برگزیده است آیا خداوند بهتر است یا آن چیزهایی که شرک می آورند أَنَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا آیا این لكم الله معبودان باتل شما بهترند یا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان برای شما آبی نازل کرد پس با آن باق های خرم و زیبا رویاندیم که شما هرگز توان رویاندن درختان آن را نداشتید آیا معبود دیگری با الله هست نه بلکه آنها گروهی هستند که از حق منحرف می شوند و بطها را هم تراز الله قرار می دهند ام جعل الأرض قرارا و جعل خلالها أنهارا وَجَعَلَ و جعل لها رواسي و جعل بين البحرين حاجزا اَإِلَهُمْ مَعَ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آیا این بطها بهترند یا کسی که زمین را قرارگاه ساخت و میان آن نهرهای قرار داد و برای آن کوه های ثابت و استوار پدید آورد و میان دو دریا مانعی قرار داد آیا معبود دیگری با الله هست؟ نه بلکه بیشترشان نمی دانند ام من یجیب المضطر اذا دعاه و السوء و خلفاء الارد ایله مع الله ما تذكرون آیا این بطها بهترند یا کسی که دعای مستر را اجابت می چون او را بخواند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را جانشینان زمین قرار می دهد. آیا معبود دیگری با الله هست چه اندک پند می گیرید ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و البحر و یرسل الریاح بشرا و من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته ایلا مع الله تعالى الله عما یشرکون آیا این بطها بهترند یا کسی که شما را در تاریکی های بیابان و دریا هدایت می کند؟ و کسی که پیش از باران رحمت خود بادها را به مجذمی فرستاد، آیا معبود دیگری با الله هست؟ الله برتر است از آنچه برای او شریک قرار می دهند. آمین. یبداء الخلق ثم و من من السماء والأرض مع الله قل برهانكم این كنتم صادقی آیا این معبودان باطل بهترند یا کسی که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را بار دیگر باز می و کسی که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد آیا معبود دیگری با الله هست؟ ای پیامبر بگو، اگر راست میگویید دلیلتان را بیاورید قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب إلا الله وما يشعرون یشعرون این بگو در آسمان ها و زمین جز الله هیچ کس غیب نمی داند و آن معبودان باطل نمی دانند که بر انگیخته میشوند بل الدارک علمهم فی الآخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون بلکه علم آنها درباره آخرت به پایان رسیده است و هیچ اطلاعی ندارند بلکه آنها در وقوع آن شک دارند بلکه آنها نسبت به آن نابینایند و, و, و کسانی که کافر شدند گفتند آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم آیا باز زنده می شویم و از گورها بیرون آورده می شویم؟ لقد وعدنا هذا نحن و من قبل این هذا إلا أساطير به راستی این وعده است که از پیش به ما و نیاکان من داده شده است این اینجز افسانه های پیشین یا نیست قل فی الارض کیف عاقبت المجرمین ای پیام بگو در زمین سیر کنید پس بنگرید عاقبت مجرمان چگونه بود و لا تحزن علیهم و في ضيق منا يمكرون ببر آنها غمگین مباش، باش باز آنچه مکر می‌ورزند دل تنگ و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم و میگویند، اگر راست میگویید این وعده کی خواهد بود قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ای بر بگو شاید پاری از آنچه را که به شتاب میتلبید به شما نزدیک شده باشد وإن ربک لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشکرون و بیگمان پروردگار تو نسبت به مردم دارای فضل و رحمت است ولی لیکن بیشترشان شکر نمی گذارند و, این ليعلم ما و, ما و بی تردید پروردگار تو آنچه در سینه هایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند به خوبی می داند. وم منواائبتیم في السمع ای والض إلهفی کتابیم مبی و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتاب روشن است. إن <تصاف> هذا القرآن <سؤال> يقص على بنی اسرائلة أكثر الذي هم ف اختلیفون بیگمان این قرآن بر بنی اسرائیل بیشتر چیزهایی را که آنها در آن اختلاف دارند بیان میکند با این، انه لهدا و رحمه قرآن هدایت و رحمت برای مؤمنان است این ربک يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم مسلما پروردگار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری میکند و او پیروزمند داناست فتوکل علی الله انک علی الحق المبین پس ای پیامبر بر خدا توکل کن بیشک تو بر حق آشکار هستی اِنَّكَ لا تسمع الْمَوْتَى ولا تسمع الصم الدعاء اِذَا وَاللَّو مُدْبِرِينَ و گمان تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان بشنوانی و نمی توانی کران را هنگامی که پشت گنان روی می سخن و ندای خود را بشنوانی و ما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 پس آنها در برابر حق تسلیم شدگان هستند و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا بی لا يوقنون و هنگامی که فرمان عذاب بر آنها واقع شود و حادثه قیامت نزدیک شود جنبند ایرا را از زمین برای آنها بیرون می آوریم که با آنها سخن گوید که مردم به آیات ما یقین نمی آورند و نحشر من کل امت فوجا من منی یکذب بی فهم یوزعون و بیاد آور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از آنان که آیات ما را تقضیب می کردند محشور می کنیم. آنگاه آنها به صف نگاه داشته می شوند. <تصفيق> حتی اذا جاؤو قال اکذبتم بِآيَاتِي وَلَمْ و بِهَا عِلْمًا بها علما اما دا كنتم تعملون تا هنگامی که به سرزمین محشر می آیند خداوند می فرماید آیا مرا تکذیب کردید در حالی که به آن احاتی علمی نداشتید یا چه کاری بود که می کردید و وقع القول علیهن بما ظلموا فهم لا ينطقون و به خاطر ستمی که کرده اند فرمان عذاب بر آنها واقع می شود پس آنها هیچ سخنی نمیگویند گویند علم نا مبصرا آیا ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنی بهش قرار دادیم بی گمان در این امور نشانه های روشنی است برای گروهی که ایمان میآورند و یوم يوم فخوف الصور ففزع من في السماوات و من في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخلين. با بیاد آور روزی را که در سور دمیده می شود. پس تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند وحشت کنند و بترسند جز کسی که خدا بخواهد و همگی با خاری و ذلت به پیشگاه او بیایند و ترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء خبیر بما و نهخوابی را میبینی و را آنها را جامد و بی حرکت پنداری در حالی که مانند حرکت ابرها در حرکت هستند. این سون و آفرینش خداوندی است که هر چیزی را محکم و استوار ساخته است. بیگمان او از آنچه انجام می دهید با خبر است. من جاء اب الحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون هر کس کنیکی آورد پس پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از وحشت آن روز در امان هستند و من جاء بالسيئه فكبه وجوههم في النار فكبه وجوههم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون و هر کس كه بدی آورد پس چهرهشان در آتش نگنسار شود و به آنها گفته میشود. آیا جزایی جز آنچه می کردید به شما داده می شود؟ اینما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. ای پیامبر بگو من فقط مأمورم که پروردگار این شهر را عبادت کنم. همان کسی که این شهر را حرمت بخشید به همه چیز از آن اوست و من مأمورم که از مسلمانان باشم وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ فَمَنِ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِ اینکه قرآن را تلاوت کنم پس هر کس هدایت شود به نفع خود هدایت شده است و هر کس که گمراه گردد بگو من فقط از هشدار دهندگان هستم و قل الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون و بگو حمد و ستایش مخصوص خداست به زودی آیاتش را به شما نشان می‌دهد پس آنها را خواهید شناخت و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان قاسیم سین مین تلک آیات الكتاب المبین این آیات کتاب مبین است نتلو علیک من نبع موسى و فرعون بالحق لقومی یؤمنون از داستان موسا و فرعون به حق بر تو می برای گروهی که ایمان می‌آوردند. <تصفيق> این فرعون علا في الأرض وجعل جعل أهلها شيع يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم بیگمان فرعون در زمین برتری جست و اهل آن را گروه گروه کرد گروهی از آنها را به ضعف و ناتوانی میکشاند پسرانشان را سر میبرید و زنانشان را برای خدمت زنده نگه می داشت. بی تردید او از مفسدان بود. و أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم أئمة و نجعلهم الورثين. و, نجعلهم و بر کسانی که در زمین به استضعاف کشیده شده اند منت گذاریم و آنان را پیشوایان سازیم آنان را وارسان زمین قرار دهیم و نمکن لهم فی الارض ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون و آنها را در زمین تمکن و حکومت دهیم و به فرعون و هامان و لشکریان آن دو از دست آنها آنچه را که از آن می نشان دهیم و اوحینا الی ام موسیعا ارضعیه فا اذا خفتی علیه فا القیهی فی الیم و ولا تخافی ولا تحزنی اِنَّ رَادُّوهُ اِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ و به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده پس هنگامی که بر او ترسیدی او را به دریای نیل بیانداز و نترس و اندوه مشو یقینا ما او را به تو باز میگردانیم و او را از پیام بران قرار میدهیم التقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامانه وجنوده ما كانوا خاطئين پس هنگامی که مادر موسی او را به دریا افکند خاندان فرعون او را از آب بر گرفتند تا سرانجام دشمن و مایه اندوهشان شود مسلما فرعون و هامان و لشکریانشان بودند وقالت قالت في فرعون قرة عين اللي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعا او نتخذه ولدا. عسا این ینفعنا اونتخده ولده وهم لا يشکون. و آسی همسر فران گفت این کودک نور چشم من و توست او را نکشید شاید به ما سود بخشد یا او را به فرزندی گیرین و آنان از عاقبت آن بیخبر بودند وا اصبح فؤاد ام موسى فارغا، انكادت لا تبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين و قلب مادر موسا از همه چیز تهی گشت اگر دل او را به ایمان محکم نکرده بودیم تا از باور دارندگان باشد نزدیک بود آن راز را فاش کند وقالت لاختي قص فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. و مادر موسا به خواهر او گفت به دنبالش برو پس خواهرش او را از دور دید در حالی که آنها بیخبر بودند وحرمنا عليه المراضيع من قبل فقالت هل ادلكم فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون و پستان همه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کردیم. آنگاه خواهرش گفت. آیا شما را به خانواده ای راه نمائی کنم که او را برای تان نگه دارند در حالی که آنها خیر خواه او باشند؟ فرددناه الی امیهی که تقر عینها و تحزن و لتعلم وعد الله حق و لتعلم وعد الله حق اکثرهم لا يعلمون پس او را به مادرش درش باز گرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و تا بداند که وعده الله حق است و دیکن بیشتر آنها نمیدانند. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين و چون موسی به مرحله بلوغ و کمال قوت رسید و برومند شد به او حکمت و علم دادیم و اینگونه گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم.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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وهنگامي به شهر وارد شد که اهل آن در غفلت بودند ناگهان دو مرد را دید با هم نزاع و جنگ می کردند یکی از آنها از پیروان او بود و دیگری از دشمنانش پس آنکه از پیروان او بود بر علیه کسی که از دشمنانش بود از وی یاری خواست پس موسی او مشت محکمی زد و کارش را ساخت و مرد موسی گفت این از عمل شیطان بود بیگمان او دشمن گمراه کننده اشکاری است قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم سپس گفت پروردگارا من به خود ستم کردم پس مرا ببخش آنگاه خداوند او را بخشید بیتردید تردید او آمرزنده مهربان است قال ربی رب بما انعمت علی فلن للمجرمین گفت پروردگارا به شکرانی نعمتی که بر من عطا کردی پس هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود فأصبح في خائفا يترقب الذي استنصره بالأمس قال له موسى إنك لغوي مبين. پس موسا در شهر ترسان و چشم به راه حادث شب را صبح نمود که ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری خواسته بود او را فریاد میزند و کمک میخواهد موسی به او گفت بیگمان تو آشکارا انسان ماجراجو و گمراه هستی فلما أن اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نَفْسًا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين پس هنگامی که موسا خواست به کسی که دشمن هردوی آنها بود حمله برد، او فریاد زد و گفت، ای موسا آیا میخواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز کسی را کشتی؟ تو فقط میخواهی در زمین جباری باشی و نمیخواهی که از مسلحان باشی؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْج فَخُرْج إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ و در این هنگام مردی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد و گفت ای موسا همانا بزرگان و اشراف قوم در باری تو مشورت می کنند تا تو را بکشند پس بیدرنگ از شهر بیرون شو بیتردید من از خیرخواهان تو هستم فخرج منها خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین. پس ترسان و چشم به راه حادثه از شهر بیرون شد گفت پروردگارا مرا از قوم ستمکار نجات بده و لما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی این یهدینی سواء السبیل به هنگامی که به جانب شهر مدین رو آورد گفت امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند وَلَمَّا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قالما خاطبكما قالت لا نسقی حتى يصدر اليعاء وابونا شيخ كبير چون به چاه آب مدین رسید بر آن چاه گروهی از مردم را دید که چهار پایان خود را آب میدهند و در کنار آنان دو زن را دید که گوسفندان خود را باز میدارند. و به چاه نزدیک نمی موسی موسا گفت کار شما چیست، چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟ گفتند ما آنها را آب نمی دهیم تا ها باز گردند و بروند و پدر ما پیر که انسال است و توانایی این کار را ندارد، فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب اینی لما انزلت ایلی من خیر فقیر پس موسا برای گوسفندان آن دو آب داد سپس رو به سای آورد آنگاه گفت پروردگارا من هر خیری که بر من بفرستی نیازمند هستم فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت قالت طالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ آنگاه یکی از آن دوزن در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت نزده او آمد گفت همانا پدرم تو را دعوت می کند تا مزد آب دادن گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بدهد پس چون موسی به نزد او آمد و داستان سرگذشت خود را بر او حکایت کرد گفت نترس از گروه ستمکاران نجات یافتی قالت احده ابت این خیر من استعجرت القوی الامین یکی از آن دو دختر گفت پدرجان او را اجیر کن بی تردید بهترین کسی را که می توانی اجیر کنی کسی است که نیرومند امین باشد و او چنین است قال این ان انكحك احد بنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشط عليك ستجدنی شاء الله من الصالحین شعیب گفت من می یکی از این دو دختر را به ازدواج تو در بیاورم به شرطی که هشت سال برای من کار کنی و اگر آن را تا ده سال تمام کنی پس لطف و محبتی از سوی توست من نمیخواهم بر تو سخت گیری کنم اگر خدا بخواهد مرا از صالحان خواهی یافت قال ذلك و وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسی گفت این قرارداد میان من و تو باشد که هر کدام از این دو مدت را انجام دادم بر من ستمی نخواهد بود و خداوند بر آنچه چه می گواه است فلما قضا موسى الاجل وسار سار بی آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم قال لأهلهم كثو إنني أنستنا لعلي أتكم منها لعلي أتكم منها بخبر أو جذوت من النار لعلكم تصطلون پس هنگامی که موسا آن مدت معین را به پایان رسانید و همراه خانواده اش حرکت کرد از سوی کوه تور آتشی دید به خانواده اش گفت درنگ کنید همانا من آتشی دیدم شاید خبری از آن برای شما بیاورم یا شعلی از آتش بیاورم تا شما با آن گرم شوید فلما آتاه نود من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين پس هنگامی که به نزدیکی آن رسید از کرانی راست وادی در جایگاه پربرکت از میانی یک درخت نداد داده شد که ای موسی یقینا من الله پروردگار جهانیانم وان القع عصا فلما راها تهتز كأنها جن و لم ولم يعقب یا موسی اقبل ولا من و اینکه عصایت را بیفکن پس چون آن را دید که با سرعت می جنبد گویی که آن ماریست ترسید و به عقب برگشت و پشت سر خود را نگاه نکرد فرمود ای موسی پیشای و نترس بیگمان تو از ایمنان هستی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 دستت را در گریبان خود فرو کن که سفید و درخشند بیعی بیرون بیاید و بازویت را برای حضر از ترس به سوی خود بیار و جمع کن پس این دو معجزه عصا و ید بیزا دو برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اشراف قوم اوست بیگمان آنها گروهی فاسق هستند قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون موسی گفت پروردگارا همانا من یک تن از آنها را کشتم پس میترسم که مرا بکشند واخي هارون هو افصح منی لسانا فارسله معي فارسله معي ليرى ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون هارون زبانش از من فسیحتر است پس او را همراه من بفرست تا یاورم باشد بما را تصدیق کند زیرا که می ترسم مرا تکذیب کنند قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فرمود به زودی بازوی تو را با برادرت قوی و نیرومند خواهیم کرد و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم. پس به سبب آیات ما بر شما دست نیابند و شما دو نفر و کسی که از شما پیروی کند پیروزید فلما بی قالوا قالو ما هذا إلا سحر مفتر ما سمعنا بهذا پس هنگامی که موسی با آیات روشن ما به سوی آنها آمد گفتند این چیزی جز سهر ساختگی نیست و ما چنین چیزی را در نیاكان پیشینیان خود نشنیدهایم وقال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار اِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظالمون و موسا گفت پروردگار من از حال کسی که هدایت را از نزد او آورده و کسی که سرانجام سرای دیگر از آن اوست داناتر است بیگمان ستمکاران رستگار نخواهند شد وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعللي صرحا لعلی اطلع اله موسى و انني فرعون گفت ای بزرگان من معبودی جز خودم برای شما نمی شناسم پس ای هامان برایم آتشی بر گلبی افروز و آجر بپز آنگاه برایم برج بلندی بساز شاید که از خدای موسا با خبر شوم. و هرچند من گمان می کنم که او از دروغ گویان است و استکبره و جنوده فی الارض بغیر الحق وظنوا انهم الینا لا يرجعون و او و لشکریانش به ناحق در زمین سرکشی کردند و پنداشتند که آنها به سوی ما بازگردانده نمی شوند و وجنوده فنبذناهم فی الیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین پس ما او و لشکریانش را فرو گرفتیم آنگاه در دریا انداختیم پس بنگر عاقبت ستمکاران چگونه بود؟ وجعلناهم ائمه یدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون بانها با را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش دوزخ دعوت میکنند و روز قیامت یاری نخواهند شد و اتبعناهم في هذه الدنیا لعنه و القیامت هم من المقبوحین در این دنیا لعنتی به دنبال آنان روانه کردیم و روز قیامت از زشت رویانند و لقد بعد ما اهلکن القرون الاولى بصائر للناس بصائر للناس و هدن و رحمت لعلهم يتذكرون. و بعد راستی بعددان که امتهای پیش این را هلاک نمودیم به موسی کتاب تورات دادیم که برای مردم بسیرت و هدایت و رحمت باشد شاید پند گیرند. و ما کنت بجانب الغربی اذ قوینا الى موسی الامر وما كنت من الشاهدين و تو ای پیامبر در ناهیه غربی نبودی هنگامی که فرمان نبوت را به موسا دادین و تو از حاضران نبودی ولیکن نا قرونا قرون فتطاول علیهم العمر و ما کن تخاویا فی اهل مدین تطلو علیهم آیاتنا ولیکن ما کننا مرسلین ولی کن ما نسل ها آفریدیم که عمر دراز یافتند و تو در میان اهل مدین اقامت نداشتی که آیات ما را بر آنها بخانی ولی ما بودیم که پیغام برانی میفرستادیم. فرستادیم و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمتا من رب کلی تنذر قوما ما اتاهم من نذیر لی تنذر ما و تو در کنار تور نبودی آنگاه که ندا دادین ولی این وحی رحمتی از جانب پروردگارت است تا گروهی را بیم دهی که پیش از تو بیم دهنده ای برای آنها نیامده بود شاید کانها پنهی رند. ولو لاء تصيبهم مصیبت بما قدمت ایديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين و اگر آن نبود که به سبب اعمالی که مرتکب شده اند مصیبتی به آنها برسد، آنگاه بگویند، پروردگارا چرا به سوی ما پیام بری نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم.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 پس هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد، گفتند چرا به این پیامبر مانند آنچه به موسی داده شد، داده نشده است؟ آیا به آنچه پیش از این به موسی داده شد، کافر نورزیدند گفتند این دو قرآن و تورات جادوی تایید کننده یکدیگرند. و گفتند همانا ما به هر کدام از آنها کافرین قل بكتاب من عند الله هو منهما اتبعه كنتم بگو اگر راست میگویید پس کتابی هدایت کننده تر از این دو کتاب از نزد خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پس اگر این سخن تو را نپذیرفتند، بدان که آنها فقط از هوسهای خود پیروی می کنند و گمراه تر از آنکس کس که هوای نفسخیش را بدون هیچ هدایتی از سوی خدا پیروی می کند کیست؟ بیگمان خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم تذكرون و ما این سخن را یکی پس از دیگری برای آنها آوردیم شاید متذکر شوند الذين آتیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون کسانی که پیش از این قرآن به آنان کتاب آسمانی داده این به آن ایمان می آورند و اذا یتلا علیهم قالوا آمننا بهی اینه الحق من ربنا اینا کننا من قبله مسلمی و چون قرآن برانها خاند شبد گویند، به آن ایمان آوردیم، بی این حق از سوی پروردگار ماست، همانا ما پیش از نزول آن هم مسلمان بودیم، اولائی که یقتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرعون بالحسنت ومما رزقناهم ينفقون اینان کسانی که به سبب صبری که کرده اند پاداششان دوبار به آنان داده می شود. و این حبانیکیها بدیها را دفت می میکنند و از آنچه به آنها روزی این انفاق میکنند وإذا سلام عليكم لا و هنگامی که سخن لغ و بیهوده بشنوند از آن روی میگردانند و گویند اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن شما سلام بر شما ما خواستار جاهلان نیستیم اینک لا تهدی من احببت ولاکن الله يهدي من یشاء وهو اعلم بالمهتدین ای پیامبر بی تردید تا هر کس را دوست داری نمی توانی هدایت کنی ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند و او به هدایت شدگان آگاه تر است و ان نتبع الْهُدَى معك نتخطف من ارضنا. اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدننا ولكن أكثرهم لا يعلمون ومشه کان اگر به همراه تو از هدایت پیروی کنیم ما را از سرزمینمان بیرون بایند آیا ما آنها را در حرم امنی جایشان ندادیم که ثمرات و فراورده های هر چیزی از هر سو به سوی آن آورده میشود؟ این رزقی است از جانب ما ولیکن بیشتر آنها نمیدانند.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 و چه بسیار از قریه و آبادی را که بر اثر فزونی نعمت مست و مغرور شده بودند هلاک کردیم. پس این خانه های ویران شده آنهاست که بعد از آنها جز اندکی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنها بودیم. و ما کن ربک مهلک القراء حتی یبعث فی امیها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کننا مهلک القراء الا و ظالمون و پروردگار تو هرگز نابود کننده قریه و آبادیها نبود تا ان در کانون آنها پیامبری بفرستد که آیات ما را بر آنها بخواند و ما هرگز قریها و آبادیها را هلاک نکردیم مگر آنکه اهالی آن ستمکار بودند و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا تعقلون و آنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد الله است بهتر و پایدارتر است آیا نمیندیشید؟ آفمو وعده نه حسنا فهوا لاقیه کمان متاع الحياة الدنيا. كمن متاع الحیات الدنیا ثم هوا یوم من کسی که به او وعده پس او به آن بعد خواهد رسید همانند کسی است که او را از متاع زندگی دنیا بهرهمند ساخت ایم سپس روز قیامت از اهزار شدگان در عذاب خواهد بود و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون و روزی که خداوند آنان را ندادهت، آنگاه فرماید کجا هستند شریکانی که برای من میپنداشتید. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين غوينا غوينا كما غوينا تبرعنا الی ما کنو کسانی از معبودان که فرمان عذاب بر آنان تحقیق یافته است میگویند پروردگارا اینها کسانی اند که گمراهشان کردیم آری آنها را گمراه کردیم همان گونه که خودمان گمراه شدیم از آنها به سوی تبیزاری میجوییم آنها در حقیقت ما را نمی پرستیدند بلکه آنها شیطان را پرستش می کردند و قیل دعو شرکاکم فدعوهم فلم یستجیبو لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا یهتدون و به آبدان گفته می شود معبودهایتان را که شریک خدا میپنداشیدید بخوانید تا شما را یاری کنند پس آنها را میخوانند ولی جوابی به ایشان نمیدهند و عذاب الهی را با چشم خود ببینند و آرزو کنند که ای کاش هدایت یافته بودند و یوم یناديهم فیقولون ما و روزی که خداوند آنان را ندادهد آنگاه فرماید پیام بران را چه پاسخی دادید فعمیت علیهم الانباء یوم ایدن فهم لا در آن روز همه خبرها و حجت‌ها بر آنها پوشیده ماند و همه چیز را فراموش کنند پس آنان از یکدیگر نپرسند فَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ اما کسی که توبه کرد و ایمان آورد با عمل شایسته انجام داد پس امید است که از راست باشد ربک خلق ما یشاء و یختار ما كان لهم الخیر سبحان الله وتعالى عما یشركون و پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند و هرچه بخواهد برمیگزیند آنان را هیچ اختیاری نیست خداوند منزح و برتر است از آنچه شریک او قرار میدهند ربک یعلم ما تكن صدورهم وما یعلنون و, و پروردگار تو میداند آنچه را سینه های آنان پنهان میدارد و آنچه را آشكار میکنند وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الاولين والاخر وله الحكم واليه ترجعون و او خدایی است که هیچ معبودی به حق جز او نیست ستایش در دنیا و آخرت برای اوست و حکم و فرمانروایی از آن اوست و همه شما به سوی او بازگردانده میشوید قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سببا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا روز قیامت بر شما پایدار سازد کیست معبودی جز الله که برای شما روشنی آورد آیا نمیشه نوید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 بگو به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا روز قیامت بر شما پایدار گرداند کیست معبودی جز الله که برای شما شبی آورد که در آن آرام بگیرید آیا نمیبینید و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار فیه ولتبتغو من فضله و لی تبتغو من فضله و و از رحمت خیش شب و روز را برای شما قرار داد تا در آن آرام بگیرید و تا در روز از فضل او روزی بجویید و شاید سپاس گذارید و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون و روزی که خداوند آنان را ندادهد انگاه فرماید کجا هستند شریکانی را که برای من میپنداشتید ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن, فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون و از هر امتی گواهی بر می آنگاه میگوییم دلیل خود را بیاورید آنگاه بدانند که حق از آن خداست و تمام را افترامی بستند از نظر آنان ناپدید شد و تباه گردد این قارون کان من قوم موسی فبر علیهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنو بالعصبه للقوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين بيقمان قارون از قوم موسى بود پس بر آنها ستن کرد آنقدر از گنج ها به او داده بودیم که حمل کلیدهایش بر گروهی زورمند دشوار و سنگین بود هنگامی که قومش به او گفت به خاطر مالت این همه مغرورانه شادی نکن همانا خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست ندارد و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنسى نصیبك من الدنیا وأحسنك ما احسن الله إلیك ولا تبغی الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ودر آنچه خدا به تو داد سرای آخرت را بجوی و بحر را از دنیا فراموش نکن و همان گونه که خداوند به تو نیکی کرده است نیکی کن و هرگز در زمین در پی فساد مباش بیگمان خداوند مفسدان را دوست ندارد قال اینم اودید و علم اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قارون گفت تنها به سبب دانشی که نزد من است آن مال و ثروت به من داده شده است آیا او نمیدانست که خداوند پیش از او اقوامی را هلاک کرد که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودند و مجرمان از گناهانشان پرسیده نمی‌شوند قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوت إنه لذو حظ عظيم پس روزی قارون با آرایش و زینت خيش بر قومش بیرون آمد کسانی که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم به راستی که او برخوردار از بحری عظیمی است وقال الذین أوتوا العلم ویلكم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها إلا الصابرون و کسانی که دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما سواب خدا برای کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد بهتر است و آن سخن را کسانی جز صابران نمی پذیرند نخاسف ما به وباره الارض فما كان له من فئات و ما کان من المنتظرین پس او و خانه اش در زمین فرو بردیم و هیچ گروهی نداشت که او را در برابر عذاب خدا یاری کنند و خود نیز نمی توانست خیش را یاری کند و اصبح الذین تمنوا مکانهو بالامسی قولون و اینکه إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون و کسانی که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند میگفتند، وای بر ما گویی روزی را برای هرکس از بندگانش که بخواهد فراخ میگرداند و یا تنگ میگیرد. اگر خدا بر ما منت ننهاده بود بیتردید ما را نیز به قعر زمین فرومی برد ای وای کافران هرگز راستگار نمیشوند تلك <تصفيق> الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین آری این سرای آخرت را فقط برای کسانی قرار میدهیم که نخواهان برتری جویی هستند و نخواهان فساد و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است من جاء بِالْحَسَنَةِ فله خَيْرٌ منها و من جاء بالسیئت فلا یجزالذین عمل السیئات الا ما كانوا یعملون کسی که نیکی آورد پس برای او پاداش بهتر از آن است و کسی که بدی آورد پس کسانی که بدیها انجام دادند جز به اندازه آنچه می کردند مجازات نخواهند داشت این الَّذِي فَرَبَ عَلَيْكَ ذکر <عبدك> اله <معاد> اعلم من جاء بالهدى ومن هو ضلال کسی که قرآن را بر تو فرض و نازل کرد قطعا تو را به جایگاهت باز میگرداند بگو پروردگار من بهتر می‌داند چه کسی هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است وما ما کنت ترجو ایل اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهیرا للكافرین و تو امید نداشتی که کتاب آسمانی بر تو القا شود؟ جُزْ إِنَّ رحمت پروردگارت بود پس هرگز پشتیبان کافران مباش ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين و هرگز کافران تو را از آیات خدا بعد از آنکه بر تو نازل شد باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشکان مباش ولا تدع مع الله الهًا آخر لا إله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والليه ترجعون و معبود دیگری با الله مخان هیچ معبودی به حق جز او نیست همه چیز جز روی او نابود می شود فرمان تنها از آن اوست و همه به سوی او بازگردانده می شوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان الیف لام میم الیف لام میم احسیب الناس ای یترکو ای يقولوا آمنا وهم لا یفتنون آیا مردم پنداشتند که چون بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها میشوند و آنان از نمیشوند نمی ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن و به راستی کسانی را که پیش از آنها بودند آزمودیم، پس البته خداوند کسانی را که راست گفتند معلوم می دارد و دروغگویان را نیز معلوم خواهد داشت ام حسب الذين يعملون السيئات آیا کسانی که اعمال بد انجام می‌دهند گمان کردند که از ما پیشی می‌گیرند چه بعد داوری می کنند. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لانت وهو السميع العليم کسی که به دیدار خدا امید دارد پس به راستی که وعده خداوند خواهد آمد و او شنوای داناست و من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ کسی که در راه خدا جهاد کند تنها برای نفع خودش جهاد میکند بی بیگمان خداوند از همه جهانیان بینیاز است والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم, ولنجزینهم احسن الذي كانوا یعملون و كسانیكه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند قطعا گناهانشان را از آنان میزداییم و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش می دهیم و غصین الانسان بی والده حسنا و این لتشرک بی ليس لك به علم فلا تطعهما ایلی مرجعكم فانبعکم بما كنتم تعملون و انسان را به نیک رفتاری نسبت به پدر و مادرش سفارش کردیم و اگر آن دو مشرک باشند و تلاش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار دهی پس از آنان اطاعت نکن بازگشت شما به سوی من است آنگاه شما را به آنچه انجام میدادید آگاه خواهم کرد وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند هر آین آنها را در زمره صالحان در می آوریم.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 و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا ایمان آورده این پس هنگامی که در راه خدا آزار ببیند آزار و عذیت مردم را همچون عذاب خدا به شمار میآورد و اگر پیروزی از سوی پروردگارت برای شما بیاید حتما میگویند به راستی که ما نیز با شما بودیم. آیا خداوند به آنچه سینه های جهانیان است داناتر نیست ولا الله الذين ولا المنافقين. و, و مسلما خداوند کسانی را که ایمان آوردند معلوم می دارد و یقیناً منافقان را نیز معلوم خواهد داشت. و, الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا و, من من و کسانی که کافر سَبِيلَنَا شدند به کسانی که ایمان آوردند گفتند: از راه ما پیروی کنید و البته ما بار گناهانتان را برمیداریم و آنها هرگز چیزی از گناهان ایشان را برنخواهند داشت بیگمان آنها دروغ رو هستند ولا يحملن اثقالهم و مع اثقالهم ولیسألن یوم القیام عما كانوا یفترون والبته بارهای سنگین گناهان خویش را برمیدارند و همچنین بارهای دیگری را با بارهای سنگین خود برمیدارند و روز قیامت یقینا از آنچه افترا بستند پرسیده خواهند شد ولقد ابسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون لبراستي كما نوح را بسوي قومش فرستادیم از او در میان آنان هزار سال به جز پنجاه سال درنگ کرد آنگاه طوفان و سیلاب آنان را فرو گرفت در حالی که ستمکار بودند فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعْلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ آنگاه او و سرنشینان کشتی را نجات دادیم و آن کشتی را نشانه عبرتی برای جهانیان قرار دادیم و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خیر لكم ان كنتم تعلمون و ابراهیم را نیز فرستادیم هنگامی که به قامش گفت خدا را بپرستید و از او بترسید که اگر بدانید این برای شما بهتر است اینما <سلام> تعبدون من دون الله اوفانا و تخلقون إن الذین تعبدون من دون الله لا یملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إلیه ترجعون شما بهجای خدا فقط بتها را میپرستید و دروغی بزرگ به هم میبافید بیگمان کسانی را که به جای خدا میپرستید مالک هیچ رزقی برای شما نیستند پس روزی را تنها از نزد خدا طلب کنید و او را بپرستید و شکر او را به جای آورید که به سوی او بازگردانیده میشوید و این تکذبو فقد کذب اممون من قبلكم و ما الرسول الا البلاغ المبین و اگر شما تقذیب کنید عجیب نیست به راستی که امتهایی پیش از شما نیز تقذیب کردند و بر اختی پیام بر خدا چیزی جز تبلیغ آشکار نیست اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلك على الله سیر آیا ندیدند که خدا چگونه آفرینش را آغاز می کند سپس باز می میگرداند بیتردید این کار بر خدا آسان است قل سیروا فی الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ینشئ نشأت الآخرة این الله علی كل شیئین قدیر ای پیام بگو در زمین بگردید انگاه بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرد سپس خداوند به همین گونه پیدایش باز پس این را پدید می آورد بیگمان خداوند بر هر چیز تواناست يعذب من يشاء و من يشاء و تقلبون. هر کس را بخواهد عذاب می کند و هر کس را بخواهد رحمت می آورد و شما به سوی او بازگردانیده میشوید و ما معجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لكم من دون الله من ولی و لا و شما هرگز نمی توانید ما را در زمین و نه در آسمان به سطوخ آورید و برای شما جز خدا هیچ کارساز و یاوری نیست والذين كَفَرُوا بآيات الله اللَّهِ وَلِقَائِهِ اولائیک من رحمتی و اولائیک لهم عذاب علیم و کسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند اینانند که از رحمت من نومید هستند و آنان برایشان عذاب دردناکی فما کان جواب قومه الا ان قال قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار این نفی ذالک لآیات لقوم یؤمنون آنگاه جواب قوم او جز این نبود که گفتند او را بکشید یا او را بسوزانید پس خداوند او را از آتش نجات داد بیگمان در این ماجرا شانه است برای گروهی که ایمان می آورند.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 و مأوىكم النار و ما لكم من مناصرين. به ابراهیم گفت: شما غیر از خدا را برای خود برگزیده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. سپس روز قیامت برخی از شما برخی دیگر را انکار می کند. و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می میکند و جایگاه شما آتش است و هیچ یاوری برای شما نخواهد بود فآمن له لوط وقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم پس لوط به او ایمان آورد و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم هجرت می کنم بیگمان او او پیروزمند حکیم است و وهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوة والكتاب واتيناه أجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و در فرزندانش نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و بی تردید او در آخرت از سالحان است و لوت را فرستادیم هنگامی که به قامش گفت بیگمان شما عمل بسیار زشتی انجام می دهید که هیچ کس از جهانیان پیش از شما آن را انجام نداده است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 آیا شما برای کامجوی به سراغ مردان می روید و راه را قط می کنید و در محافل خود اعمال ناپسند انجام می دهید پس جواب قومش جز این نبود که گفتند اگر از راست گویانی عذاب خدا را برای ما بیاور قال رب انصرنی على القوم المفسدین لود گفت پروردگارا مرا بر قوم مفسدان یاری فرما و لما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالو قالو انا مهلكو اهل هذه دیه این اهلها كانوا ظالمین و هنگامی که فرستادگان ما ابراهیم را بشارت آوردند گفتند به راستی ما اهل این قریه صدوم را حلاک خواهیم کرد بیشک اهل آن ستمکار بودند قال این نفیه لوطا قالوا نحن اعلم بمن لننجينه و ب فيها لننا جَّ واهلم إلا مرته كانت من الواابری ابراهیم گفت: همانا لوت در آنجاست فرشتگان گفتند: ما به هر کس که در آنجاست داناترین یقینا او و خانواده اش را نجات میدهیم. جز همسرش که از بازماندگان خواهد بود و لما رسلنا لوطا بهم و بهم ذرعا و لا تخف ولا تحزن انا منجوك و اهلك الا امرأتك كانت من الغابرين و چون فرستادگان ما نزد آمدند از دیدن آنها اندوهگین و به خاطر آنها دلتنگ شد و فرشتگان گفتند نترس و غمگین مباش بیگمان بیگمان ما تو و خانواده را نجات خواهیم داد جز همسرت که از بازماندگان خواهد بود انم انزلون على اهل هذه القريه جزاً من السماء بما كانوا يفسقون همانوا ما بر اهل این قریه به خاطر آنکه نافرمانی و گناه می‌کردند عذابی از آسمان فرو خواهیم ریخت و لقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون و به از آن قریه نشانه و عبرت روشنی برای گروهی که خرد میبرزند باقی گذاشتیم والی مدین اخاهم شعیبا فقال یا قومی اعبدوا الله وارجو الیوم الآخر ولا تعثوا في الارض مفسدین و به سوی مدیان برادرشان شوعیب را فرستادیم پس گفت ای قوم من خدا را بپرستید و به روز بازپسین امیدوار باشید و در زمین به فساد نکوشید فکذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين آنگاه او را تکذیب کردند پس زلزله آنان را فرو گرفت پس در خانه های خود به افتادند و مردند وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانو مستبصیرین و قوم آد و سمود را نیز حلاک کردین و یقینا برخی از مساکن ویران شده آنها برای شما آشکار شده است و شیطان اعمالشان را برای آنها بیاراست. پس آنها را از راه خدا باز داشت در حالی که بینا بودند وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فستكبو في الارض وما كانوا سابقین و قارون و فرعون و حامان را نیز هلاک کردیم و به راستی موسا با دلایل روشن نزد آنان آمد پس آنها در زمین سرکشی کردند و پیشی گیرندگان بر خدا نبودند و کلن اخذنا بلن به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 آنگاه هر یک از آنها را به کیفر گناهش گرفتیم پس بر بعضی از آنها طوفانی از سنگ ریز فرستادیم و بعضی از آنها را صیح فرو گرفت و بعضی را در زمین فرو بردیم و بعضی را غرخ کردیم و خداوند هرگز به آنها ستم نکرد ولیکن آنها خود برخیشتن ستم می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 مسل کسانی که به جای خدا اولیا و دوستانی برای خود برگزیدند همچون مسئله انکبوت است که خانه ای برای خود برگزیده است و بی گمان سوسترین خانه ها خانه انکبوت است اگر میدانستند. این <تصفيق> الله یعلم ما یدعون من من شی وهو العزيز العزیز الحکیم یقینا خداوند هر آنچه که به جای او میخوانند میداند و او پیروزمند حکیم است و تلک الانثال نظرمها للناس و ما إلا العالمون و این مثال هایی است که آنها را برای مردم میزنیم و جز دانایان آنها را در نمیابند خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لاایه للمؤمنین خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید بیگمان در این نشانی بزرگ برای مؤمنان است. اُتْلُوا مَوْحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ والله يعلم ما تصنعون ای پیامبر آنچرا از این کتاب بر تو وحی شده است تلاوت کن و نماز را برپا دار یقینا نماز انسانها را از زشتیها و منکر باز میدارد به البته یاد خدا بزرگتر است و خداوند آنچه را انجام میدهد میداند